میخواییم پای صحبت بزرگترین فیلسوف معاصر ایران استاد منوشه جمالی بشین ایشون میخواد درباره خیال صحبت کنه بخش اول این سخندانی رو چند هفته پیش برای شما پخش کرد اینک پای صحبت ایشون میشینیم تا بخش دوم این سخندانی رو گوش کردیم خیال بسیار مهمه اون چیزی که در انسان خیال نامیده میشه سالهاست هاست سده هاست، زورگویان و جباران تاریخ میخوان اونو اما بگیرن به اسم اینکه انسان حق نداره که خدای خود رو خیال کنه اونها میخوان این خودهایی که ما در ذهن خودمون داریم بشکنن و جای اون یک بطه بزرگی به نام الله رو بذارن اما این بازگشت به خیال بازگشت به بت‌های گوناگون خدایان گوناگونه که میتونه راهگوش‌های ما به دموکراسی و آزادی باشه و این در فرهنگ ایران هست دوستان پای خط تلفن استاد امنشهر جمالی داریم استاد امنشهر جمالی بیش از صد تا کتاب درباره فرهنگ ایران نوشته که با این کتاب‌ها نام خود رو در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده گوش میدیم به سخنان استاد منوچهر جمالی دوستان دوستان اکنون این به بخش دوم دوستارمان درباره مفهوم خیال در غزلیات مولوی و این ار را به نام رشته خیال و کشف حس رنگارنگی تجربیات در فرهنگ ایران مینامید. پدیده خیال در قذلیات مولوی هنگامی مفهوم و می‌شود می شود که ریشه های آن را در فرهنگ ایران بیاید خیال تصویری است که از جهانی برخواسته که در دو جهان یا به عبارت دیگر پارگی و شکاف و دریدگی و بریدگی در آن نیست آسمان از زمین بریده نیست روح از جسم بریده نیست خدا از آفریدگانش بریده نیست به عبارت دیگر نه تنها آنها به هم پیوستند بلکه با هم هم گوهر این پارگی و بریدگی گوهر ازیان نوری هست و امروز هم و امروز هم آن در فلسفه ها و مکاتب فکری در از ما چیرمند هست چنان که برای ما هنوز برونسو اوبجکتیویته از درونسو سوبجکتیویته بریده است راسیونالیته از ای بریده است چنانچه در اسلام کافر از مؤمن بریده است عقل به طور کلی هرچرا موقعی روشن میکنم از هم پاره کند مرزبندی در تعقل در واقع شکافتن و بریدن و از هم پاره کردن می شود که البته این از دین میترایی برخاسته است برای روشن ساختن این مطلب با شعری از مولوی آغاز میکنیم که میگوید خیال دوست تو را مژده و داد دهد خیال دوست را مجده و دهد که آن خیال و گمان جانب یقین کشه در این چهی ای تو که چه یوسف خیال دوست رسن در این چهی ای تو که چه یوسف خیال دوست رسان رسن تو را به فلک های برکرین خیال دوست رسن است بند است نخست ریسمان است که به تو بسته است و تو را از چاه زمین به برترین فلکان بالا میکشد میان ما و حقیقت و خدا و آسمان است که ما را به هم محکم بسته است ما را محکم به هم بافته است این بندون نخو تار و رسن هیچگاه از هم بریده نمی شود و همین بند است که ما را جانب یقین می کشن. البته اگر به نام های همین نخ و تار و بند و کنف و کنف ریسمان است این ها بنگریم و اندکی در آنها بررسی, بررسی بکنیم میبییم همه اینها نام های خود سیمرغ هم. سی این همانی با آنچه میبندد با آنچه به هم می با آنچه به هم میبافت دارد. فقط برای اقتصار من به اشاره به چند واژه می کنم یکی خود واژه تار است. این تار تا اساسا یکی از نام های سیمر بوده است یکی تنف است که ریسونی است که از پوست کتان تابند و اون بقای از محکم و می باشد که اسمش صنخ سن, سن اسم سیمور است یکی دیگر از اسمش شاهدانه است و شاهدانه شاه اسم سیمر بوده است بعداً و معنای مجازی به حکام و قدرتمندان شاه گفتن و همینطور نخ نخ نام در لغت همه نام نام است ولی این اساسا نام خود سیمر بوده از نخ و این رسن بایستی از واجه رسه آمده باشد این رسه واژه‌ای بوده است که به که جانشین واژه راکا شده است که گردونه‌ای که با اسم اون را میکشیدن به اون رات راتا می‌گفتند به این گردونه و که نقش خیلی بودرگی در اساطیر ایران بازی می‌کنه به, به،, به خصوص که گردونه آفرینش را راتا می‌گفتن که باسی همون راد آلمانی باشد که معنای چرخ پیدا کرده است ولی این گردونه را در گردونه کیهانیز گردونه آفریزیس هست که رسه شده از بعداً و این واجه رسم بایستی از آن آمده باشد در هر حال به این بررسی بعداً بیشتر خواهیم پرداخت ولی تمام این نام ها نام نق و تار و کنف و بند اینها تمام نام های خود سیمور یا دهره که رام باشد هست در جاهای دیگر به جای این بند و نخ و رسن که خیال دوست رسن هست که اون وقتی این رسن است که به روان و در زمیر انسان هست و این را به بالا می کشد این را ما حالا بیشتر تأخیر می ببینیم ریشه این فکر از کجاست در جاهای دیگر اصطلاحات پرنده و پرواز را به کار زمیر یا روح انسان است که هر شب به سوی او پرواز می ولی در مرگ وقتی کاملا پرواز کرد اونگاه یک جا به او می البته این ایده در تفکر ایرانی تنها به مرگ بستگی نداشته است بلکه اساسا در هر تفکری در هر بینشی این زمیر انسان نعراج پیدا میکند پی، پیون با آسمان پیدا میکند که در اونجا هم بونه بیچیز و در اثر این وصل به, به سر رو بینش واقعی میرسد ولی در همینجا که مولوی در مورد مرگ به کار میبرد میبینیم که در این پرواز هست که انسان زمیر انسان به بینش واقعی به حقیقت و سر هر چیزی می رسد میگوید که ری که جمله جانها به هر شبی بپرند ری که جمله جانها به هر شبی بپرند که شهر شهر قفص ها بشب زممور تویز در هر شب تمام قفص های تنها در شهر همه از مرغاشون توهیه هستن همه مرغاشون تریدن البته این ایده در گذیده های دادست برم میاد که روان انسان شب به اصلش میپیوندن پرواز میکنن حالا چرا را ما این را بحث خواهیم چون تو این یک مسئله معراج اصلا به این نقطه بین اندیشه بین اندیشه و این تفکر ایرانی بوده است که همه انسانها معراج در بینش همیشه معراج دارند و این ایده را بعداً برای برگزیدگان گرفتن و رابطه انسان را با رابطه مستقیم انسان را با حقیقت قطع کردند. رهی که جمله جنها به هر شبی بپرن که شهر شهر قفصها بشد به مرگ توهیست چون مرگ پایوه بسته است دور می نپرد به چرخ می نرسد و دوار او عجمیست علاقه را که به مرگ باز, باز پرد حقیقت و سر هر چیز را ببیند چیست این علاقه را شو ببرد یعنی از تن علاقش شو ببرد و به مرگ با پرد اون حقیقت و سر هر چیزی را میبیند ولی در فرهنگ ایران این طرها در مرگ روی نمیداد است بلکه این در هر روند بینشی در هر روند شادی شنیدن موسیقی در رویا این روی میداد است هم آن مفهوم رسن و بند و تاریخ و هم این مفهوم مرغ پرنده و پرواز اینجا روان و زمیر انسان مرغ است که پرواز میکنند اینها ریشه های بنیادی دارد که بایستی پیوند اینها را با هم در کرد هم اون مفهوم رسن و نقطار و هم این مرغ پرنده و پرواز استوار بر همون تصویر جهان به هم پیبسته یا جهان عشق و جهان مه دارد که بنیاد پرهنگ ایران بوده است در پرهنگ ایران دو جهان وجود نداشته است خدا و مخلوق وجود نداشته است اینها همش به هم پیبسته بودن یک گوهر بودن یک جهان با هم بودن فرهنگ ایران استوار بر تصویر رویش و درخت این درک این مسئله فوق العاده مهم است چون رویش و درخت با مفهوم مهورزی و آمیختگی سرکار داشت درخت نماد مهر یعنی آمیختگی و به هم پیوستگی و هم بود چرا؟ اصلا واژه درخت که در اصل ون بوده مثلا ما می کنیم نارون این ون واجه اصلی یک درخت است. این واژه اصلی درخت ون اطلاسا به معنای مهبر دیدن است، کلمه ون و اطلا وان تا مثلا یعنی دوستی و به معنای محبوب است. ون همون واژه است که امروزه بند شده است که هم ریسمان و تناب است و هم کمربند و البته واژه بنده هم هست این واژه بنده هم همین واجه است ولی این هیچ ربطی به تصاویر معل... به... با, با... با واژه عبد عربی و عبری ندارد چون که بند به معنای عاشق و دوستار و محوردنده است و در کردی بندل به معنای محبوب است مقصود این است که این واجه وند یا بند که همون بنده شده است یا بندل شده است این این واجه است که به درخت گفته می شود و به تنه درخت هم بند و بند گفته می شود همین واژه بالاست که به معنای درخت است یعنی چی یعنی درخت برابر با عشق است این خیلی مهم است که این تطابق این دو معنا ما رو به به معانی جرفی در فرهنگ ایران میرساند این ون در کردی به معنای بافتر وندن به معنای بافتن ریسمان و برشت, برشت کشیدن مهرهاست که اینها همه علامت نشان عشق است و درست, درست در گیلکی به بافتن و اوتن گفته می شود در گیلکی به بافتن و اوتن گفته می شود که همون وی... ویوتن هست واژه ویوتن این ویو نام خداست و نام سیمور است. اما از وایو فعل ساختن وایوتن کردن در این تصاوی خدا و بافتن و بافنده و به هم دهنده این است که وقتی که به درخت گفته شد و درست روی این درخت سیمور روشت و از اینجا خیلی معانی برای ما روشن می شود در, در هر صورت می بینیم که سیمور بندیست و تاریست و نخیست یا ونیست که همه چیز را به هم مستثل می کند یعنی در واقع اصل عشق. است این خیلی مهم هست. این یعنی خدا اصل عشق میان همه چیز هاست همه چیزها را به هم می بافند به هم می در دادستبرم در گذیده های دادستبرم دیده می شود سیمور روی درخت ون هر بس تخمک آشیانه دارد یا اینی که اسم دیگرش ون وس تخمک است ون وس هر وسب تخمک را به ترجمه که میکنند میگویند همه تخمه ها ولی با داشتن معنای اصلی ون که عشق و مهر است بلافاصله میبینیم که تنه این درخت مهریست که اصل همه تخمه جانداران است یعنی از عشق همه جانداران پیدایش میابند چون که روی این درق خوکه همه جانداران هست البته آن را به دارنده همه انواع گیاهان ترجمه می ولی این بافتن که مفهوم عشق دارد این به عنوان دارنده نمیشود ترجمه کرد بلکه این آ، آ، تمام جا، جانها از این عشق می رویند سیره این عشق را در خودشون دارند این, این هم غلط است و هم درست غلط است چون برای ما گیاهان غیر از جانوران و انسان است، ولی در این فرهنگ جانوران از تخم گیاهان و این انسان ها از تخم جانوران پیدایش مییابند و بالاخره خدا یا سیمرغ از تخم و خوشی انسان پیدایش مییابد این دنیا دنیای عشق دنیای به هم بستگی و به هم آمیختگی است این سیمرغ است که بون و بیخ را به بار و بر می‌بندد یعنی تخم را در اصل به تپه را بر فراز درخت به وبر و به خوشه فرازی گیا می‌بندد نخ میان این دو است نخ میان این دو است نام دیگر این درخت که چطور گفتیم و وس تخمک است البته این وس را به معنای بس و بسیار ترجمه میکن ولی در اصل این وس بوده است به معنای خوشه گندم و خوکه گندم بود هست. پس این درخت یا ون یا مهر فرازش خوکه همه زندگان است و خوکه هم نماد به هم پیوستگی و عشق و مهر است. البته نیوه و بر درخت که عشق که همان ون باشد نیز عشق هست. همچنین تخم فراز درخت نماد بینش هم هست. خوخ و آب اصل روشنایی است به این ون یعنی این درخت میان دریای بروکش و بروکش است که در در مطونه پهلاوی با اون میگن کرد ولی این بروکش معنی, معنی اصلیش رو دارد و این خوکه این همانی با سیمون داشته است. توخم این درخت خود سیمون خود خداست که به هم آمیفتند و بستند ارتا فرورد یا ارتا خوش اهل فارس به اون ارتا خوش میگون در دوشتی ها ارتا فرورد میگون ارتا فرورد. که همون فروردین باشن و به با که این به معنای در به معنای اهل فارس ارتا خوش معنای ارتای خوشه یعنی اصل همه مهر همه جانها به هم است. همه جانها در ارتا فردرد با هم میآمیزند این همون داستان سیمرغ اتار است که از ایده اتار از اینجا نشعت میگیرد در واقع مرگ چیزی جز جشن عروسی همه جانها به هم نیست که همان سیمرغ باشد همه در آخر به وسال سیمرغ میرسند البته نه تنها در مرگ بلکه در جستجو، در جستجو کردن در هماندیشی در شادی در همپرسی یعنی در دیالوگ این پیون پیدایش میابد و مردم تیمور میشوند و به حقیقت پی می‌برند. در اصطلاح علایات زردشتی همه فروهرها یا فروهرها پیش اهورامزا میاید ولی با اهورامزا یکی نمی‌شوند. الهیات زردوشتی با این به این ترتیب راه بست شدن و آمیخته شدن با اهورامزدا را بست. الهیات و همینجا برمیگردیم بعدش داستان خیال را خواهید دید که این داستانه که این رشته خیال این رسن خیال با ابعاد تفکرات مولوی اثر همون رابطه مستقیم انسان با بونه کیهان را اثر حفظ کرده است و این بر... رفع این بریدگی را کرده است. الههیات در دوشی راه همگوهری با اهورامزدا را میبندند و همچنین فروهرها همه از هم پس از مگرد نیز جدا میمانند این اندیشه بر به اندیشه فرهنگ اصلی ایران بوده است. در هر انسانی تخم ارتافرور بوده است. یعنی تخم خدا سیمور بوده که همین فر و باشد. یا فر ف فر یا فرورد این اصل واژه فر و هر و بوده است و این توق به اصلش که ارفاسی مرغ است برمیگردد و با آن اثر میآمیزد و در ارتاب فربرد یعنی در سیمور همه با هم یک خوکه می شرن. این تصویر مرگ البته نتایجی دستد که الهیات زردوش برای مسئله پاداش و مجازات و اینها این ایده را نمی است این رو بعدا بحث طولانی را این خواهیم کرد این است که تصویر درخت زندگی که همین همینون باشد و معنای اصلیش را که عشق باشد هست و مهر کردن نه این تصویر این درخت نقش بزرگی در سراسر تفکرات ایرانیان بازی می کرده است مثلا زمان دروند زربان که زربانان که خوانده می شود ولی در اصل است به همین زمان درخت چه بوده است درخت زروند یعنی درخت زر زمان به هم پیوسته است عشق و مهر است نشها هم پاره نیستن همه به هم بستن این مفهوم پیوستگی زمان به هم به کلی با مفهوم ما از زمان که از هم بریده است فرق دارد مثلا به گل ختمی که همون گل خیریش، ورد و زروانی میگویند و خیری گل رام دختر سیمره است خیری گل رام در خدای رام که همون ظهر باشد که دختر سیمره است این است که گل خاتمی یعنی همون ورد زروانی یعنی گل زروان و اینجا واجه ورد را فراموش نکنید کمی ارتا پرورد این کلمه ورد اینجا هم تکرار شده است که باز به اون بر گشت ولی درباره زمان صحبت میکردیم که اسمش زهربان زهرون است زر در ترکی ببینید آثار در تمام این فرهنگ ها پخش شده است در هر کجای ردفایی باقی مونده. است زر در ترکی ب... ب... آلتون نامیده میشود آل این زن خدا سیمون قسمش آل یا ال بوده است و تون یعنی زهدان پس بنابراین آل تون که زر باشد یعنی زهدان سیمون از طرفی در شده واژه آدر است این را الهیون زردشتی سعی کردن این واژه آدر را به هر ترتیبی هست معنای اصلیش از معنای اصلیش بگردانند. در حوض که در یکی از متونی است که ما دانیداری می‌بینیم که این آذر به معنای یکی زن آمودگار است یکی به معنای دهدان است که در کوردی آگر به آتش میگویند یک معناش هم معنای آبستان است آور پس ببینید پس زربان زر ضرب، اون معنای طلا که در ظاهر دارد معناش معناش چیز است معناش در باغه همون زهدان پس در که اصل زمان باشد به معنای زهدان و سرکشمه عشق و بینش است. برای همه قاطر هم زن به زن آموزگار گفته می شد این هست که و سرک... این معنای زمان بوده است. دیده می شود که ایرانیان رابطه بسیار مثبت و آفرینندی آفریننده به شادیزا از تدیده زمان داشتند ببینید این مفهوم زمان به کلی با مفهوم امروزه ما یا با مفهوم که عمر خیام از زمان داشته هست فرق فرد دارد همین واژه زمان همین خود واژه زمانی که ما در افعال مردم آورده می شود برای, برای زروان به کار برده می شود یعنی چی زمان یعنی جایگاه پایکوبی و عروسی چون زمان هنوز در کردی به معنای پایکوبی است و, و به جشن عروسی زماوند و زماوند میگویند اساسا نام رام دختر سیمور زم بوده است این است که در شاهنامه در داستان آزمای هزار دیده میشود که زمان درختی است دارای سی شاخه خدایان ایران همه از تنه درخت که باز همون ون نامیده می شود روی درخت نماد عشق خدایان ایران به هم دیگر است همه این سی شاخه، سی تا خدای ایران همه با هم یک درخت هم. سی خدا با هم یک درخت هم. سی روز زمان با هم یک درخت است. ببینید اینجا مفهوم به کلی مفهوم شرک و توحید در ایران به کلی فرق داشته است با اون چیزی که اسلام در واجه شرک و توحید را دو پدیده متداد میدانست است ایران کاملا دو اصل هماهنگ هنگ می دانست است هم توهید بوده هم شرک بوده است و اینها متمم و مکمل هم دیگر بودن ون در کردی به معنای اجتماع هم هست همه که با هم جمع شدند اجتماع شدند و هم بافته شدند چون بافته شده‌اند هم بن است. همه یک بدن هستند یک درخت عشق یک سیمرغ می به همین علت میترایان در غرب در غرب میترا و رشن و سروش را سه شاخه یک درخت نشان می دادن. این البته رشن و سروت را در غرب کاؤتس و کاؤتوپاتس می گفتن و میترات و این کاؤتس و کاؤتوپاتس این سه خدا با هم, هم می نشان می دهن که چون سه شاخه درختن پس با هم همسرشت هستند. از این ایده از ایده میترایان که البته از ایده فرهنگ سی آمده بود از اونجا شکافته شده بود که از این ایده ترینیته مسیحیت به وجود آمد چنان که بسیاره از ایده های مسیحیت از همین گرایی میتر، گرفته شد این،, این به معنای واقعیت یافتن عشق و مهر در جهان بود این اندیکشه عشق ای یا مهر ایرانی بوده است که سپس با زور میخواهند ریشه آن را در قرب بیابند یا با تعبیلات زورکی و غیر منطقی چیزی می که جانشین آن ایده اصلی بسازند و این اندیشه که ابزورد یا پوچ مینامند چونکه چون که این ایده عملا اونچون بیان اصلیش را رها کرده است. این سبب شده است که این را ابزورد پوچ مینامند و اساس تفکر کرکگار این با جای ابزورد این با پوچ است و پیوند اندیشه تقم خوشه و درخت با مرگ درخت و مرگ با هم پیوست دارن بنیاد اندیشه آفرینش و بینش در فرهنگ ایران است که بالای این درخت تیمسییممر برابر با خوش است یعنی مر برابر با خوش است. این خوشه درخت در واقع این مر است. این ایده این تصویر از کجا آمده است؟ این تصویر را بعدش ما فراموش کردیم و و با فهم این تصویر به بسیار از تفکرات این دوره پی میبریم دینش؟ در فرهنگ ایران با شکوفایی هستی انسان این همان دارد. بینش چیزی نیست که توی مغز روی بدن بلکه این باید هستی انسان وقتی شد، شکوفا شد اون بینش است. بینش با هستی شکوفایی با هم است به قول آلمان زاین و دنکن این همانی با هم دارن بینش پر کردن مغز و حافظه از یک مشت معلومات و آموخته ها نیست بلکه آن کسی بینشمند است که هستیش شکفته و بالیده و به درش افتاده است کسی که حافظه وسیع از آموخته ها دارد متخصص به خاست اما بینش دینی ندارد بینشمند نیست ببینید این دو تا چیز است متخصص بودن غیر از این است که بینش دینی داشته این بینش بسیار فرق با متخصص بودن دارد آدم اکسپرت است خبره هست در, دان در قرآن در احادیث ولی بینش دینی ندارد بینش با رویش کار دارد رویش وجودی این بود که ایرانیان به روح اساسا روح وخش میگفتن وخش یعنی رویده همون کلمه واکسل آلمانی یا واکس انگلیسی این میگوی یعنی رو روینده آنچه که از وجود خود انسان میروید و میبالد این روح بود وخشا این چیزی نبود که از آسمان با امر الله ساخته بشه فرود فروت بیاید نه این رویده وخشا در فرهنگ ایران روح و... یک چیز رویده از انسان بود کلمه رویده از انسان بود برای این است که به کلمه هم وخشا میگویند وخش هم کلمه است هم روح است وخشا به معنای روحانی بود مثلا چشم ماروک چون در تاریخی می دیدن. این وخشا بود این روشنی چشم رویده بود و همین اندیشه است که سپس در عرفان نام نظر می دیدن این این پدیده بعدش در در عرفان ما ب... ب... ب... نام نظر میگیرد روشنی چشم روشنی که از گوهر وجود انسان رویده باشد این کلمه ها که واکسل آلمانی باشد، مانوی ها به روح و روح القدس میگفتند بخش یوزدار یوزدار بخش در البته باجه هم گفتیم که یعنی کلمه هم از همین اصل است یعنی کلمه به معنای روینده و رویش هست در واژه همون کلمه آواز و ویس انگلیسی در این, این که در انجیل بیا در آغاز کلمه بود و اون معنای تیولوژیکی که مسیحیت به دانداد یک مشتیار وافیش چون در آغاز کلمه بود به معنای آن بود که در آغاز رویدن و بالیدن و شکفتن بود در آغاز به عبارت دیگر اصل پیدایش بود همه جهان اصل پیدایش میابدن این به کلی با معنی که روح که دنیا را دو پاره میکند یکی پردر آسمانی است که به کلی پاره است و این و روح القدس فقط این واسطه بین این دو دو دنیا است این به کلی با اون اندیشه ایرانی که روح را بخش یعنی یک رویده, رویده از وجود از سراسر وجود انسان دانست این می بینید تفاوت چی است و از این در آغاز کلمه ببینید از یک واژه چقدر تحریف می و دنیایی از الهیات و فلسفه در اثر تحریف یک واژه پیدایش میآبد. این این است که این اندیشه ها است که فضای را روشن می سازد. که اندیشه خیال از مولوی در آن پیدایش یافته است قصدی توسی در نامه داستانی میآورد که در آن گرشاش از برحمن هندی میپرسد که این چیزی که مردم میگویند انسان را خدا از درخت پدید آورده است البته در اون موقع رفت بود از ترس از اسلام همه علیشه های ایران را یا به برحمن نسبت میدادند یا امثال اینها چون نمیتوانستند مستقیما به خود ایرانی نسبت بدهند مثلا اتوب به پک هندی نسبت میده یا شاهنامه افکار زیاد دارد که برهمن نسبت داده اینا مربوط به برهمن نیست که از ترس مرجای این فکر رو یک برهمن هندی دانستن برهمن در آغاز برای اینکه جواب بگوید که این معنای چیزی که مردم میگویند انسان را خدا از درخت پدید آورد این آخر به اصطوره به اصطوره های ایران برمیگردد در احمد در آغاز اشاره به این می که برای خدای معجزگر که البته اسلامی ها می این کاری نیست همون که از نچیز آفریده از چیز زید چیز کند چیز نشکافت نیست یعنی اگر از چیز هم چیز درست کند تو نباشه از هیچ وقتی از هیچ نچیز ناچیز می تواند چیز خلق کند خب البته از چیز چیزی دیگر می تواند خرق کند این شیوه اندیشه اسلامی این تا البته خدای ایران با رویش و پیدایش کار دارد و اصل قدرت نیست که با معجزات جهان را خلق کند آنگاه می گوید برای ما این قسمت مهم است درخت شناس این جهان فرا این جهان فراخ را؟ بسی یک درخت بشو درختی شناوت این جهان فرا سپهرش تو بیخ اکسیدان شاخ سپهرش مثل بیخ هست. مثل ریچاست در واقع همون بارایه مینوس اکسیدان یعنی اراتور شاخ است حالا درباره این بحث روشنتر خواهیم کرد ستاره چو گرهای بسیارو همه رستنی برگ و همه روستایی برگ و ما بارو همه روستایی ها یا این درخت جهان هست و ما یعنی انسان ها بارو انسان بار درخت جهان است همی هر زمان نو برا رد بری همی هر زمان نو برا رد بری چون سود که هم بردمه تو این شد که هم به دیگری به دین گونه تا بی خبارش به جای بمانه نه پوسه نه افتد به پای درخت اون که زو آدم آمد برون درخت اون که زو آدم آمد برون بدون کیم گفتم که چون این بود کس بگفتم چون اینی که درخت از, از درخت گونه آدم بیرون اومد به این ترتیب آمد به تقم درخت عرفتی در جمال نگاه کن برش تقم باشه همون حالا خوب اگر متوجه این موضوع بشوی میبینیم که این تقم تقم درخت همون برش براش برش چی انسان که تقم بالای فراز این درخت است. پس انسان که برش هست و تو که باز در شعر بالا گفت سپهر هست دیخ هست پس بنابراین اینها ها بون جهان هستند. برای این جهان مردم مردم آمد برای این جهان مردم آمد چنان که همین جد نخست چنان چون درخت آمد از بحر بار جهان از پی مردم ها آید کار. البته این رد پای در هم هم ولی بسیار زنده از اصل اندیکه ایرانی است جهان درختی است و ما همه انسان ها بار و بر او هستیم به ستاره ها گل ها و گیاهان برگها و شاخ هایش شار اونترن. از این درخت است که آدم بیرون می آید و اگر بپرسید خوب که خوب این درخت از کجا آمد از تو و درست بروبار این درخت همون است که درخت از اون پیدایش میاد و این است که در واقع هم آغاز و هم انجام است البته این همین اندیشه است همین اندیشه اگر با دقت درک میشد به کلی بر ضد همه ادیان نوری و ابراهی از اله است و این همون اندیشه است که فراز سر کوروش نقش بستند توخمی که تنه یعنی ون می شود و بارش با تخم است. و پیدایش تخم این همانی با چی داره؟ با پیدایش چارپر کورش دارد. در این تصویر مشهد مرغا دیده می شود که کروش چهار تا پر دارد. این چهار پر درست این که تخم وقتی باز می شود گشوده می شود تبدیل این را تبدیل به بار می شود اصلا واجهه بال همون کلمه ورد است ورد که گفتیم ارتا پرورد ورد همون کلمه بال بالیدن بالیدن و بال یعنی رویدن و بال در یک معنا یک واژه بوده است یک اندیشه بوده است این است که در آغاز تخم انسان را با چهار بال می‌کشیدند این به معنای تخم بال تخم گسترده گوی باز، یکی از نام های فروردین یا ارکا فروردین یا سیمور گوی است. این را لغت, لغت شناسان خیال میکنن بازی کردن با بوهاست. یک مثل یک بازیگر است که با چهار تا گو پنج تا گو بازی میکنند ولی این اشتباه فهم آنها این از اینجاست که معنی اصلی اصطوره ایران را نمیدانستن که گوی باز یعنی تخم باز این است که اه اه این تخم باز یا گوی چارپر در نقش های اولیه حتی در, در تفجمشی دیده می شود یک گو یک چیز دایره شکلی گردی که پر دارد ولی این گوی چارپر گوی بعدش مرغ چهارپر می شود که سی مرغ باشد این مراحل مختلف همین اندیشه و سپس از مرغ چارپر انسان چارپر می سازن که در،, که در تخشمشی دیده می شود و همه پیدایش یک اندیشه بودن همه مراهل مختلف یک اندیشه اول تق با پرها با چارتا پر یا با پر بعدش مرغ با چارتا پر بعدش انسان با چارتا پر و خیال درست همون پخ میاو بوی گسترده و چهار پر بود این نقشی را که در در دیده می شود که انسان با با که به او امروزه فروهر یا فروهر گفته می شود این در واقع مجموعه یعنی جمع او آمیختگی اهورامزدا با سیمر است این یکی بودن بر و بار با تخمی آبرد معنای بسیار جرفی دارد هم تخمی که در آغاز در زمین کاشته می شود و هم بار و برخوشهی که در فراز در آسمان پیدایش می آبرد مینوز و همین علت این بهمن مینوی مینو گفته می شود که ارکه جهان باشد و این میان تنه درخت است که همون ون بن بن خوانده می شود تنه درخت نخ و تار و رسن و بند و بن است که مینو را به مینو پیمان می دهد و هم میبندد آسمان و زمین آسمان و انسان به هم پیو به هم همیشه پیوسته این درست این رسم این درخت این ساوه همه را همیشه به هم میپیبندند این بستگی و مه باید همیشه پیدایش یابد این هیچ وقت نمی شود این رسنها میان زمین و آسمان از هم پاره بشود این است که در بون انسان در بون انسان همون بهرام و خرم و رام هست یعنی تخم انسان همون بهرام و خرم و رامه که در سه سپهر فرازین آسمان نیز همین هست همین سپر پنجم بهرام است سطر ششم که معمولا به اورامزای یا زئوس تغییر نام داده شده و با آنها نسبت میدهند در اصل از مشتری بوده است که همون خرم میباشد و آسمان هفتم که من منسوب به دوه است همون کیوان یا کتبانوس که کسی جدرام آبستان نیست اینها با هم یک تخمه این سه, سه،, سه پهره در پایه و درست همین سه تا در انسان هم هستن یعنی بن انسان هم همین سه سه, سه چیز هست که خدا هست که بهرام و خرم و رام هست که این به دو، این دوتا همیشه با این رسن با این بند با این بند، با این نخ با هم پیوستهن یعنی انسان همیشه رابطه مستقیم سیم همیشه سیمش به خدا وصل است به عبارت امروز ما میان این دو بستگی همیشگی این ایده است که میان انسان و حقیقت میان انسان و خدا هیچ وقت پارگی نیست که واسطه لازم داشته باشد پرواز از زمیر به آسمان بالیدن انسان در خدا این پرواز از زمین به آسمان یه عبارتیست حالا الان این رو می خواهیم روشان کنیم که چرا پرواز از زمین به آسمان همون بالیدن انسان بالیدن دیاه انسان در خدا بوده است یعنی تخ، تخم این درختی که می روید تخم انسان خداست همای قاف قربی ای برادر هما را جز همایی مسلحت نیست یا در جای دیگه مولوی میگوید تو مرغ چار پری تا براسنان پردی تو از کجا و ره بامون اردبان ز کجا تو احتیاجی به بامون اردبان نداری به نردبان نداری که بره بید بان چراچ چنین بلند چرا میپرد همای زمیر شنید بانگ سفیری ز ربیال احلا این بانگی را که از خدا میشنود این هما را به اون شو میکشد. پرواز کردن در واقع همون افضایش در رؤیدن بن انسان بوده است انسان در شادی کردن در بینش و اندیشیدن در شنا کردن در شیده جهان در دیالوگ در, در دیالوگ یعنی هم‌پرسی در رؤیا در آرزو کردن در دین که بینش حقیقی بینش گوهری انسان باشد در هفت آسمان میروید انسان در برخورده با اینها در همه این روندها در هفت آسمان میروید یعنی با خدایان میامیزد. این همان معراج عروج یا ارج ج زمیر انسان است این همان خیال یا خبال یعنی تخم سی است که می بالد ورد در عوستا و سندسکریت همون بالیدن است زمیر انسان همون زمیر انسان که در آثار مولوی فراوان میآید همان همون است که در اصل فرحورد است است که فرحورد بزیش شده است پرور شده است که ما امروز فروهر میخوایم. فرآورد فر یعنی به سوی جلو، به سوی بالا حالا در در و افزودن و بزرگ شدن در به سوی بالا می میروید در خدا در هفت آسمان میروید یعنی هفت آسمان میشود در هر انسان خسته مرکزی انسان همون زمیر هست که همون پرورد باشن این زمیر انسان همون پرورد است که در مولوی اصطلاح زمیر جانشین باجه جانشین اصطلاح پرورد شده است در الهیات زردشتی این فروهر یا پرور را دروان جابید انسان می دانند و فرشته نگهبان انسان و در درمان زندگی می شمارن. ولی این فرورد چیزی جز همان تخم سیمر ارتهای فربر نیست که نامهای دیگرش که گفتیم ارتها خوشت یعنی ارتهای خوشه و اردا ارتهای و که در, در اصاححات زرداشتی فرشی. از این رو در الهیات زردشتی به جای اصطلاح فروردتی که تخامنشان میگفتن اونها فروشی میگویند، فروشی وشندن به معنای پاشیدن و به شدت حرکت کردن وش کردش در کردی به معنای دوباره زنده شدن و مذاق کردن وشان همون افشندن و تکان شدید است البته وشتن رقصیدن هم هست که سوپیها ها رقصیدن وشتن میگویم. این قرارویی، سرابالی، حرکت سریع و رقص و لوکدایی است که در این هستی انسان، زمیر انسان همیشه در این روند هست. همین واژه در شکل پرورد به معنا بالا رویدن، به معنای بالا رویدن، بالا نمودن و بالا افزودن است. البته ارت ها پرورد ارتا خوشه هم هست پس همون خوشه و تخم است که پرواز سریع به آسمان می کند خوچه تبدیل به مرگ به هما به سیمر می شود تخم سیمر خوال یا خیال در رویدن میبالد و پرواز می کند درست مولوی با خیالش با مفهوم خیالش راه این معرفت تون پروازانه معرفت های معراجی معرفت های همایی را از سر می بوشاید همیشه با خیالش رابطه تنگاتنگ و مستقیم با خدا با این بونه که هم با اصل دارد. در هر کسی این فرهوشی فرورد است که او را مستقیماً به حقیقت به خدا به عشق به جان به زیبایی میکشاند. خیال بون و هسته مرکزی و زمیر انسان در روند روئیدن و افزودن و باریدن است. این مینو و خوشه است که با سرعت پرواز می کند و به بون آسمانیش تحول می آبند. حتی پرواز همان تحول است. خوشه تحول به مرد می آبند. ولی همون خوشه می ماند. فقط تحول یابده است سپس به سیمور به ارتا پربست ارتا خوش به سپهر به فرازین با تحول می ما امروز واژه پرنده و پرواز کردن را به کار میبریم. ولی در اصل به پرواز کردن بازیدن می گفتن امروز باز ما ما باز را به اقاب و اینها میگوییم ولی باز یعنی پرواز این این که میگویند شه باز شه باز به معنای سیمورگ است در خاطر که شاه اسم سیمورگ است یعنی شاه پرنده یعنی سیمور و یا شا شاهین شعنا همون اسم سیمورگ است اینها اسم اقاب نیست ولی بازیدن در اطلش وایدن بوده است یعنی چی؟ باز به همون بایو برگشتیم یعنی پرواز همون وایوس همون با سیمرغ همون باد است به پرنده وایندک با... وایندک میگفتم و به پرواز وزشن میگفتم وزشن یعنی پرواز وزیدن و وایدن یعنی واید حرکت میکنه. بای کیست؟ وای به اسم همون سیمرغ است که با آن نای به هم میگویند. ورد که بال بود و بشی که خوش بود ناگهان تمیان تکان شدید میخورد و زنده میشود و بال پیدا میکند و پرواز میکند. واژه امروزی پرواز که در طیری باز باشد، باز باشد. این را ترجمه هایی که می معمولاً هیچ رابطه با اسطوره‌های هایی را ندارد همون پریست و واز یعنی جهیدن یعنی پرواز کردن پرواز به معنای پریدن پریه هست پرواز یعنی پریدن پری می وزد پرید می در چشمه زمین را کرد اون پرید وساهه در چشمه زمیر کردن پری وخاقی هر صورت خیال از وی شده است پیدا صورت خیال تو از کجا پیدا؟ از آن پری که در چشمه زمیر تو خانه داره هر جا که چشمه باشد باشد مقام پریان با احتیاط باید بودن تو را در آنجا. این پنج چشمه حس تا بر روان روان است زشراق اون تریدان گفت بسته گاه مجرا دون پنج حس باطن چون وهم و چون تصور هم پنج چشمه میدون پویان به سوی مرعا یعنی چراگاه با زمین چشمه است که آب یعنی کاری است که آب حقیقت و عشق شیهه از آن می توشند که از جمله صورت خیال همه از چشمه زمیر که از پری که در آن خانه جا دارد سرچشمه می گیرد. پری و پر... پریداد چنان که در گفتار شاه پریان گفته آمد همون بین یا بینش جرف یوشنده از خود فرد انسان است در این قدر می‌آید. که صورت های و پنج چشمه حس و پنج حس باطنی همه از همین چشمه زمیر که پری در آن خانه داره روان است البته فراموش نباید کرد که واژه پری یا فری به معنای عشق است اصلا واجه پری یا فری به معنای عشق است آفریدن کرمه آفریدن فری آفریدن یعنی عشق بردیدن ایرانی در آفریدن یعنی عشق ورزی میکنه خدا می یعنی خدا عشق می این واژه با خلق کردن در فضاد است اون امر میکنه این عشق می حالا خوب نگاه بکنید که همین واژه فری شده است فری, فری شده است نیایش معنای نیایش داشت یعنی عشق نیایش است عشق ورزیدن مهر ورزیدن به اشخاص نیایش است نه که دو خواندن نیایش نیست که تو مسجد برویم دعا بکنیم بعدش سر همه دنیا کلاه می‌گذاریم و آغوش بکشیم این عشق ورزیدن به همه این نیایش است این پرهنگ ایران بود و عشق ورزیدن در فرهنگ ایران آمیختگی و هم گوهر شدن است خدا عشق می بزد. از این رو خودش دیتی می شود. از این چشمه زمیر که پریخانه است همه حواس روانند اینجا خیلی اهمیت دارد از این چشمه زمیر که پریخانه است همه حواس روانند این روان بودن حواس بسودن چشیدن بوئیدن دیدم، و سایدن. اینها اینها ها تراویش خدای تراویده از بون کیهان از بون زمان از بون انسان هم. نه تنها به خواست تشت کرده نمی شود نه تنها از خواست گریخته نمی شود نه تنها خواست را نابسا و گمراه سازنده و فریدکار نمی دانه بلکه خواست را زایده و تراویده از زمیر می همون زمیری که این پری یعنی سیمرغ در اون خانه دارد پرهنگ ایران به هیچ روی از حواس روی می گرداند بلکه درست سرچشمه آن را خود خدا خود پری خود سیمرغ مرغ در پرهنگ ایران در پرهنگ ایران جدائی حض از اندیشه, های، اندیشه ها و مفاهیم عقلی نیست حس از و عقلی جدا نیست هر دو از یک چشمه می ترابند. هر دو از یک اصلا و مانند هم اطالت دارد حواس همون اندازه به بون کیهان به خدا به حقیقت نزدیکند که اندیشه ها و خیالات هواس حواس نیست اندام های دانا خونده می شن. در ایرانی واژه اند هواس ها را خارزمی هواس ها را اندام های دانا می نامن. نه اندام های گمراهی بینش در فرهنگ ایران بر پایه جستجو قرار دارد این خیلی مهم است اشتباه کردن هواس یا فریب خوردگی هواس از ارزش جستجو نمی که هست اصلا جز جز جز جز که آدم اشتباه بکند. فریب بخورد اشتباه کردن و فریب خوردن و کجراه رفتن جزو ضروری بینش در جستجوست ایدئال این که میتوان بینش بی و بدون رنج و کار رو آورد یعنی با وحی و الهام این سبب خارش مردن حواس مجردن. بینش استوار بر آزمودن است و حواس در آزمودن است که بی بینش می به بینش میرسد و اشتباه گردن و فریفت شدن و گمراه شدن کجراه که در جد باید پیمون اصلا باید پژوهش همین کج رفتن از سر کوه و تفا در بینش بدون رنج که از آسمان در مغز و دل انسان بیوفتد با الهی با تصویری از الهی کار دارد که همه چیز را میداند و دوستانش را از دستجو فارغ و بازشفته می سازد و دانش را بی هر جز جزجو و آزمایشی که زحمت دارد فرو می اندازد این اصلا تصویر خدای ایران نبوده. این است که حواست در فرهنگ ایران برترین نقش را در جستجو بازی می کند حواست شناخت را خلیه حواست را در فرهنگ ایران بوی می نامیدن. بوی را کناله واجه بوی که امروزه برای ما یک معنای خیلی تنگی دارد در معنای همه حواس شناخت بوده است این است که بوی ویژگی روان بود روان چی بود؟ روان این همانی با خدای رام داشت یعنی روان ما زهره بود بوی که به کل شناخت گفته می شود سراسر حواس را به بوییدن چون که بوییدن یعنی چی؟ یعنی جستجو کردن است. در... پس بنابراین جوزیدن است این است که بوی به تمام حواس افراق می‌شود. یعنی حواس تمام حواس اصل جویندگی هستند. همه حواس اصل جستجو در تاریکی هستن جستجو همیشه در تاریکی است پس حواس از چشمی زمیر که پریخانه یا آشاری سی مرغت نیجوشد خود این واجه زمیر خود این واجه زمیر که خانه فرید و همه پونی که این یک واژه عربی است در اصل به واجه زمیران در گردن زمیران که زیمران هم خوانده می شود در تحفه حکی مومن دیده می شود که به شاه اسفرام گفته میشه بایا شاه اسفرام چیز؟ شاه اسفرام به معنای ریحان سیمر است. این واژه شاه اسفرام را به کی می گفتن شاه اسفرام نام های گیاهی بود این گیاه از جمله نامش شجرت و سنم بود از جمله نامش بهروج و سنم یعنی بهروج و سنم یعنی بهروج و, یعنی و سیمر از جمله شجره ذلقرنین بود ببینید از جمله اورنگ و گلچهره و بالاخره بهرام با سیمرغ ست میبینیم پس زمیر کسی چیزی غیر پیوست بهرام که بود در درون هر انسانی نیست در واقع زمیر همون سمر و سمیر و سمیران است که همان سیمرغ است که بهرام و سیمرغ و رام باشن که از بهمن از مینوی خرد از اصل از از خرد سامونده پیدایش شدن اکنون پیوند خیال با زمیر یعنی با سه بونه کیهان که در تن انسان هم روشن میگردن این ببینید تمام این گفته ها ما که پس پیش آمد و در این شعر که دیدیم خیال با زمیر پیوند دارد اکنون میبینیم که خیال از کجا سرچشم می دیرد؟ تحول همون دمیر است که این سه خدا باشند که در بونه انسان هستند البته این سه با هم این همین سه با هم سه تا بخش ما هم بودن. در ماه نیایش که دکتر افیفی در کتاب اساتیر و فرهنگ ایران ترجمه کرده است میآید که بهمن مینوی نادیدنی و به دست نیامد یعنی. و از بهمن این عرقه دنیاست بهمن مینوی نادیدنی و به دست نایامدنی و از بهمن به ماه آفریده شده است به دیدنی و به دست نایامدنی و از ماه به گوشورون آفریده شده است به بینایی و به دست آمدنی این در اینجا اندکی دقت می کنیم چونکه این بنیاد اندیکه اندیشه ایران درباره آفرینش است. فرهنگ ایران این اندیشه را می که مینوی مینو که بهمن باشد. نادیدنی و ناگرفتنیست این چی میشود؟ این تبدیل می شود به ما که هم باشد که این دیدنی ولی ناگرفتنی میشود می شود دید ولی نمی شود گرفت. تا تبدیل به گوشروا می شود. که جانان که همه جانها باشد که هم دیدنی و هم گرفتنی در واقع آفرینش روند تحول اصل یا ارکه جهان به حقایق دیدنی بناگرفتنی و سپس و به جهان جان است که دیدنی به گرفتنی است یک بار اگر فرصت باشد من درباره مقایسه این اندیشه بودور با مصول با ایده افلاطون یک بار صحبت خواهم کرد تا تفاوت این دو را با هم ببینیم چون که فوق العاده این فرهنگ ایران را کشپیر و ملموس می‌سازد این خدا خدایی نیست که با امر و نه فراسوی خود جهان را بیافریند بلکه هستی ارکه‌ای ها که تبدیل می‌آورد اینها روند پیدایش هست. خدا چیزی خارجی نیست جهان یک هستی نابریدنی و یک پارچه است این است که بهمن معمولا در این داستان ها میبینیم که بهمن جامعه بیدرز میپوشد. می پوشد. شبیه که جامعه بهمن است که در گذشته همه ایرانی ها می جامعه بیدرز بود که نشان بدهد جهان جهان اشخاص همه با هم یک گوهر بهمن یا اصل خرد چی میگه؟ اصل خرد جامعه مهر می این آمیختگی خرد و مهر پوکل در فرهنگ ایران بنیادی است عرکه جهان است جهان جهان عشق این است که زمیر که خانه پریست ناگهان در شب در تاریکی میجوشد. ای خیالت در دل من هر سهور ای خیالت در دل من هر سهور می خور آمد هم یک پار نو نخش خوبت در میان جان ما نخش خوبت در میان جان ما آتش و شور کند بانگه شور آتشی کردی و گویی سب کن آتشی کردی و گویی سب کن من ندانم صبر کردن در تنور یا داری کامدی تو دوست یا داری کامدی تو دوست مست ماه بودی یا پری یا جان هور ماه بودی یا پری یا جان هور هور در توفیه حکیم ممن نام سر به البته با های حب بست. ولی اینها فرق ندارد اینها در اصل یکی بوده است که با, یک با اندکی تفاوت در معنای دیگر با های می نوشتند. ولی در اصل یک تصویر بوده است که این تصویر هر دو معنا را داشته است ولی اینها بعدا اینها را دو چیز جداگانه از هم کردن هور در که حکیم و صرب است که این همانی با سیمر دارد. اون خیالی که زمیر اوتانه او اون خیالی که زمیر اوتانه او پاس را یعنی پایش را با هم مسکن و با جا چکر خیالی که زمیر خانه و آشیانه هست بسته به جانیست خیال همون ارتاق و همون فرعورد فرعوشیست که ناگهان تخم و خوچه این تقنخوشه تبدیل به چی می شود؟ به بال و پر و تبدیل به باد می شود تبدیل به هما و سیمر میشود. می شود این تحول تقنخوشه به مرد به پرنده به بال همون خیال است که انسان را به سوی بنش در آسمان می کشد. هر روز بامداد با در یکی پری هر روز در دقایده که پرید بیرون کشد مرا که زمن جان کجا بری من تو را میبرم این پری زیبا میگوه گر آشقی نیابی مانند من بوتی ور تاجری کجاست چون من گرم مشتری ور آرفی حقیقت معروف جان منم بر آرفی حقیقت معروف جان منم ور کاهلی چونان شدیه از من که برپری ور بر حس فاسدی دهمت نور مستفا ور مسته کاسدی کنمت زر جعفری چون عص میگریزی من بر تو هم سوار چون اسب میگریزی من بر تو هم سوار مگریز از که بر تو بود کن بود خرید چون عص میگریزی من بر تو هم سوار مگر از که بر تو بود بر اون کسی که تو روی تو سوار است شود گریخ خان با خری این خریگت است از این پری که با زیباییش انسان را به بونش میکشد، هست نمی شود, خرید. خرید هست. هست. نمی شود حتی گریز از او پرواز به سوی اوست او تا دارد میبرد این کشش بون به بون این کشش اصل به اصل همه تنه درخت است که ون یعنی اش خانده می شود یا همین خیال گوی باز است که بال و پرگ شده است این خیال است که انسان را به یقما میبرد میرو باید به اصلش میکشد بینش حقیقت چیزی جز تحول یافتن به حقیقت و حق نیست بینش یافتن تخصص یافتن و حفظ کردن و سفست کردن, کردن با آن آموخته ها و به کارانداختن عقل در خدمت تحریفات. برای قالب ساختن آموزه نیست که انسان با آن ایمان دارد بلکه بینش یافتن تحول یافتن به سیمرگ است تحول یافتن وجودی به بهرام و خرم و کیوان است تحول یافتن به بونه دیتی است خیال ترک من هر شب صفات ذات من دارد ببینید مولوی چه با این ترک را هیچ وقت با وجودی وجود که به معنای یقماگر رو بانده گیرد به معنای زشت بکار نمی برد. برد به کار همیشه به نام معشوق به کار میبرد خیال ترک من هر شب صفات ذات من کردند که نفی ذات من در وی همه اثبات من کردند ز حرف عین چشم او ز حرف عین چشم او زه ضرف جیم گوش او شطرنج هفت هفتختر به حرفی مات من گردند هفت هفت هفتختر یک شطرنجی شاه این شطرنج سی مرخ است شاه به حرفی مات من گردند اصلا شاه این شاه شترنج که سی است برای مات شدن است برای مات شدن است اگر زن سیبون سیبی اگر زن سیبون سیبی اگر زن درخت سیب سیبی چه کافم؟ میذاید اگر که عالم را فرو گیرد از او جنات منگردد وگر مصف به کپ گیرم البته اینجا اشاره به قرآن می کند اگر مصف به کپ گیرم، البته چون قرآن هم جوز به کتاب هست ولی این باییه مصف همیشه اشاره به قرآن است وگر مصف به کپ گیرم زهیرت افتاد از دستان ما امروز میگیم ما از رد کرد باید انتقاد کرد نه او از حیرت از دستش می افتاد. روحش یعنی روخ اون محشوق روح سیمون روحش سر عشر من گرد خانه. لبش آیات من گردم جان تورست اون جهان تور است و من موسی هر انسانی موسی جهان تور اوست که من بیهوش او ولی ولیکن این کسی داند که بر میقات من گردد خیال دلبر بم تبدیل به صفات ذات من میگردد این خیال تبدیل میگردد و شاه بازی شطرنج اختر همون سیمرغ است در بازی شطرنج مات من میگردد خدا ماک می شود این خدای ایرانی نمیبرد میبازد تبدیل زمیر به خیال و خیال به اختر همین روییدن زمیر انسان در افراف و کیهانی شدن انسان است انسان سراسر کیهان هستی جانان میگردد خوب دیده میشود که خیال روند پیوند مستقیم به وجودی این وجودی را مولوی هستانه میگوید این خیال روند پیوند مستقیم هستانه هر انسانی با خدا با حقیقت با کل هستی با بن هستی با بون آفرینندگیست هرچه برسها به حال باشد او خیام گردد آخر به سال چون که نگار این پیوند زمیر و بون انسان با آسمان که همون بون آفریننده کیهان هستند پیوند عاشق و معشوق هستند که همدیگر را در آغوش انسان آسمان، آسما انسان و خدا اینها و همدیگر را همیشه در آغوش این اندیشه را چه زیبا مولوی در یکی از غزلیاتش میگوید دختران دارم چون ما پس پرده دل زمیر همین دختران دختران دارم چون ما پس پرده دل ما رویان سماوات مرا دامادند دخترانم چو شکر سر تا سر خطروان فلک اندر پیشون فرهادم خطروان فلک آشق این دختران زمیر من هستن همه لب بر لب معشوق چو نی نارانند دل نداند و عجب اینکه همه دل خیال همین مرغ و ای است که مانند برق میان بونه انسان و بونه کیهان در آمده شده است این تحول زمیر انسان به خدا و تحول خدا به زمیر انسان در همین پدیده خیال شکل خود را می گیرد خیال روند مستقیم پیوند انسان با بونه کیهان با خدا و حقیقت است دوش خیال مست تو آمد و جام برکفش دوش خیال مست تو آمد و جام برکفش گفتم میده می نمی خورم گفت مکن زیان کنی گفتم ترسم ارخورم شرم بپرد از سرم دست برم به جود تو باز زمان کران کنی من؟ کبر را از دست میدم با تو گلاه اچید میشم دید که ناز میکنم اون خیال مهد تو دید که ناز میکنم گفت بیا عجب کسی جان به تو روی آوره روی بدان گران کنی با همگان گان با چون منی پلاسم یعنی تو با همه نیرنگ میکنی با منم میخوای نیرنگ کنی با همگان پلاسو کم با چون منی پلاسم خاص بک نهان منم خاص بک خاص بک یعنی خدای خاص بک و همون کلمه واجه بغست خاص بک نهان منم راز من نهان کنی یعنی تو عاشق منی تو میخوایی این رو از من نهان کنی بازی در میاری ناز میکنی گنج دل زمین منم سر چنه تو بر زمین قبله آسمان منم روچه به آسمان کنیم سوی شهی نگر که او با نور نظر هست تو را ورد سفیگزه سرکشی روز عدد چنان کنیم تج بنشین و راست کن تج بنشین و راست کن راست بود صدا بود جان و روان تو منم سوی دگر روان کنی این رسن خیال این رشته خیال این تار خیال همون بند یا ونه یا بن هست که دو بن را به هم پیوند این همون بندی است که انسان را به خدا به حقیقت می‌بافد می‌بندد و جفت می‌کند و می‌آمیزد این پرواز دائم در رفت و برگشت اون روزگار نماد شاهین و کرکس و باز را پیدا می کرد خیال در پرواز به بون در سپه نصر تائر خونده می شود یا سیمرغ گسترده گسترد و خیال در پرواز فرودین نصر باقی خونده می شود صورت خیالی از چشمهی که خانه پریست مستقیبا تراویده می در یعنی صورت خیالی درست زاده و تراویده از خود سیمور این خانه پری که سرچشمه همه اندامهای دانایی چه حسی و چه غیرحسی است همون دین می باشد. که در گفتارهای پیشین در باره پری و پریزاد که در صندوق هستی انسان هست و داستانی را که اثر آورده است گفتگو شد و آورده شد صندوق هستی انسان صندوق چون که گفتیم صندوق به معنای نای و دهدان سیمرغ است دوک همون دوخ همون نای است و در ها دوخت نست و در نست که در این صندوق وجود انسان به قول شیخ اطار همون پری دوشیده زیبا درخشان سپیدبازو نیرومن خوششهره برزمن با پستانهای برآمده نیکوتن آزاده و نجاده که پانزده ساله مینماید نماید و پیکرش همچند همه زیباترین آفریدگان آفریدگان زیباست این از خود گفتن میآید راجع به این پری راجع به که همون دین باشد هنگامی که انسان از اون میپرسد که تو کیستی میگوید من دین تو هستم دین یک آموزه ای نیست بلکه خود خداست انسان میگوید پس کجاست آن که تو را دوست داشت برای بزرگی و نیکی و زیبایی و خوشبوئی و نیروی پیروز پیروزی و و توانایی تو در چیرگی بر دشمن اون که تو در چشم من مینمایی این پری اصل زیبایی و جوانی و بزرگی و نیکی و است خوشبوی یعنی بینش بو بویدن چنان که در پیش آمد, آمد به معنای شناخت است در فرهنگ ایران اصل زیبایی اصل بزرگی اصل نیکی مانند موسول یا ایده اپلاطون ای نیست بلکه وقتی همه های دنیا به هم پیوستند و با هم آمیختند اصل زیبایی میشوند همه همه زیباییان در زیبایی شریک و انبازند اصل جوانی و بزرگی و نیکی و بینش در هر انسانی سرچشمه زیبایی و نیکی و بزرگی است که وقتی همه به هم به و با هم بیا میزن اونگاه اصل زیبایی، اصل نیکی، اصل بزرگی میشوند. این است که خیال یا خوال تخم سیمون اصل چهره یا صورت زیباست. خیال سرچشمه پیدایش های صورت های دیدنی ولی نیست. اگر خیال در یک چهره یا صورت پیدایش میاد گرفتنی و به دست آوردنی میشود. پس خیال اصل پیدایش زیبایی در سرطان. اساساً باجی صورت که همون باجی سوره و سور باشه، هنوز در کردی دارای معانی است که اینها برای های مختلف این تصویرند یکی به معنای جاذبیت است سور، یکی به معنای چرخش است که گرداندن باشد، تحول باشد. و یکی هم به معای سرخ و آشکار است. اساسا سرخ خصص پیت منای پیداش داشته هرچه که پیدا می شده سرخ یا س فچ می شده است. این است که و هم منای سور مهمانی و سور است چون که اساسا پیدایش همیشه جشن بوده است. به در این باشه و می بینیم که سوراندن در کردی چرخوندن و گرداندن است درست چنین صورتی با ایمانی معانی ویژگی خیال در صورت است هم می‌گرداند و تغییر می‌کند هم جاذبیت دارد هم آشکار است و هم ایجاد جشن و میکنن. می‌کند مانند خیالی تو هر دم به یکی صورت مانند خیالی تو هر دم به یکی صورت زینشکل استی در شکل دگر رفتی این است که با خیال انسان حساسیت و اصاساً حس برای دریافتن تیف یعنی تنوع و رنگارنگی پیدا می کند نام دیگر خیال تیف است از این پس هر پدیدهی هر تجربهی هر واقعیتی و به وجه هر انسانی برای ما کریستال پر از سراش میگردد طیف رنگ میگردد هر چیزی فسردگی و یخزدگی ظاهریش را از دست با این حس از دست میدهد و ناگهان طیفی از صورت ها و رنگ ها و چهره ها میگردد می نماید فسرده هر چیزم همچو دیدند هر یکی در جوش اگرچه چیزها همه در ظاهر برای من افسرده هستند، ولی همچو دیگران هر یکی در جوش با این خیال است که انسان می حس برای درک صورت های گوناگون پیدا کند انسان می از طیف صورت ها رنگ ها عقاید ادیان مکاتب خدایان کام ببرد این خیلی نکته حساسی است ما با این خیال این این حس خیال انگیز را ما امروز این, خیال این حس خیال انگیز را از دست دادیم این حس را با خار ساختن و بی ارزش ساختن خیال در ما ریشتن سختن چون که خیال در واقع این حس درک و حس کام بردن از تیف است. و ما این حس را از دست دادیم از قرن در قرن نوده هم در قرن کشیدن با تعدیه حس تاریخی حس تاریخی حسی هم آورن که جایگزین این خیال در فرهنگ ایران این خیال نزد مولوی گردد حس تاریخی حس تاریخی داشتن غیر از بیرون کشیدن یک قانون سرب از تاریخ است بیرون کشیدن یک آموده یا عبرت است بلکه پیدایش حسی است که میتواند در رنگارنگی تاریخ و اندیشه ها ارز و تاریخ آشغالزان نیست تاریخ گنجینه و طیف تجربیات گوناگون است که هر کدام برای خودش ارزش و ارز دارد و هر کدام نیاز به خیال دارد تا اون ارزش خاص بیجاش را در یابد. در برابر این خیال است که همه عقاید و ادیان و مکاتب دیگر در کنار هم بر ضد هم یا روبروی هم قرار ندارم. بلکه این براب اصب یا براب یا اصب یا رخش خیال البته خیال خودش به معنی اصبان هست میتواند به همه راه یابد و حس برای فهم آنها بیابد حس برای شناخت زیبایی آنها بیابد حس ذائقه میتواند می تواند همه مزه را بچشد و بمزد و از آنها کام ببرد حس ز... ز... شناخت زیباییش میتواند می تواند زیبایی هر کدام را در یک آن دریابد این گشودگی گشایش درک این گشودگی یافت و دریافت در اثر وجود براغ تیزبال خیار یا فراورد ممکن است و و به پیدایش میآبد گشودگی این باب بودن انسان در اثر همین خیال پیدایش می‌آید بیگانه دیگر برای او نیست این لذتبری از بیگانه این شگفت از بیگانه با. این نشینی با بیگانه با نیروی سریع در کسی که دارای چنین خیالی است حس هش یا به خیال شاد شدن از همه رنگ ها از همه اعایب از همه مکاسب این درک دوباره خود دوباره خود به کردار رنگی از رنگ ها به کردار رنگی در میان رنگ ها نه به کردار جد همه وجود خود این خیال است که شیبه تمالیابی در هر صورتی است او در میابد که چگونه چهره از سیمور در, لحظ، در یک لحظه از آن عقیده از آن دین از آن مسلک در اوج خود آشکار می شود این خیال این حس زنده است که در نیابت یک فکر ناگهان در خود به اوج سرشاری حسی اش میرسد در باره همین پری که خیارهای رنگارنگ می زاید مولوی میگوید اسیر شیشه کن اسیر شیشه کن جنیان نینر اسیر شیشه کن اون جنیان دانا را بریز خون دل اون خونیان صهبا را خلاه هزار خوشرو را قبای لعل ببخشیده چهره ما را به گاه جلوه چو تاووس اغرها برده وقتی جلبه میکنن رنگارنگ میشوند مثل تاووس گشاده چون دل اشا پر رعنا را عکسشون زعکس اک... این اکس این رنگارنگی پرشون زعکسشون فلک سبز رنگ لع شود قیاس کن که چگونه کنن دلها رو درآورن به رقص و ترب به یک جرعه هزار پیر ضعیف بمانده بر چه جای پیر؟ که آب حیات خلاقم که جان دهند به یک غمزه جمله اشیارا. این پریان که به گاه جلب وقتی پر رعنای طابوسگونه خود را می گوشاید. عقل ها را می رو و دل ها را تغییر می و پیران را جوان می و آب حیات خلاق هستند. و با یک غمضه چشم به همه اشیاء جهان جان میدهند همون خیالانگیزان در هر انسانی هستند در این خیال است که پرهنگ ایران پدیدهای همانند همون حس تاریخی غرب آفرید و ما سپاسگزار مولوی هستیم هرچند این جرفای خیال را هنوز در اجتماع نشناختیم که بنیاد کسرتگرایی خوش و قرآن